اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و موفق و معین با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد بحث امروز رو شروع میکنیم اللهم صل اللهم محمد و محمد کلیات رجال آقای صبحانی صفحه 238 هستیم اساني يونس بن زبيانه روى الشيخ عن موسى بن القاسم ان صفوان وبل ابي اميرن ان بوليدن او يزيدا يزيده ويونس بن زبیانه قالا سألنا ابو عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب او في شهر رمضان حتى اذا كان اوان, اوان الحجه اتا متمتع و قال لا بأس بذلك خب بحث ما در نقض یا اشکال چهارم بر قاعده مذکور در العده شیخ توسی بود شیخ توصی در العده فرمود که این ستا بزرگوار ابن ابي عمر صفان و بزنتی و, و هم اینها لا یرو اولای یرسلون الا ان و اصحاب هم بین مرسلات اینها با مصندات دیگران فرقی قائل نیستند خب بعد از اشکالاتی که بر این بحث مطرح شد آخرین اشکال این بود که اصلا ما نگاه میکنیم میبینیم این سه نفر از افرادی که ضعیفاً نقل کردند پس چه قاعده خودشون عملا میبینیم از زعفا نهال کردن حالا شما میگید که لا یربون اولا یورسنون الا انسقه بعد ما میپرسیم میگیم کدوم زعفا از کدوم زعفا نهال کردن میگه اولیش علی ابن ابی حمزه بطاینی بود که برسش گذشت دو شخصی به اسم یونسابن زبیان هست که این آقا زعیفه ابن عبی عمر از اون نهال کرده سلام و درنتیجه نتیجه قاعده میشه یونس یونسوبنو زابيون اگر ثابت بشه که ابن عبی ازش نقل کرده این یک و ثابت بشه که ضعیف هست قاعده خراب میشه حالا ببینیم آقای سبحانی چه وسایلی داره اولش روایتی که ابن عبی از یونس نقل کرده رو بیاریم این روایت در دو تا کتاب شیخ توسیه تحذیب و استفسار خب خود هم یه نکته داره ها که در کافی و من لا یهزور نیومده اگر در کافی میومد خیلی دیگه تفاوت داشت خب حالا ببینیم روش شیخ, شیخ توسی انوسب نلقاسم ان صفان و ابن عبی آمهر خب جالبه این برای سفان هم اشکال خواهد شد پس این تو بحث سفان هم که بعد وارد میشه اونجا هم باید این بررسی کنیم که البته اگر همینجا حل شد و ثابت شد که مثلا یونس ضعیف نیست یا این سنت مشکلی داره و نقلی ثابت نیست برای سفان هم حساب خواهد شد ان بورایدن او یزیده این ابن عبی اومیر و صفان نهال کردن از بورید یا یزید و یونوس یعنی از یونوس هم نهال کردند خب معلوم میشه که پس ابن عبی اومیر از یونوس نال کرده یونوس ابن زبیان قاله حالا حدیثش هر چی هست؟ اون الان لازم نداریم سرناب عبدالله میگه که بورید و یونوس حالا یا بورید یا یزید دیگه میگن از امام صدق علیستانو پرسیدیم شخصی در رجب یا ش... در رمزان محرم میشه تا ایام حج بعد میاد وارد حج میشه حضرت فرموده اشکال نداره. خب و یونسو بنا زبیانه زعیفون از کجا میگیم ن... ز... این زعیف قالن نجاشی زعیفون جدن لا یلتفتو الا ما کل کلو کتبهی تخلیطون به روایت های یونس ابن زبیان التفاتی نمیشه بهش اعتناه نمیشه و همه کتابهاش تخلیطه توش قراغاتی داره یعنی میبینی توش قلوفم هست این تخلیتون گویا بیشتر برای همون قلوف و اینا به کار میرفت که در نتیجه هر راوی تو روایاتش قلوف بود دیگه عملا میذاشتنش کنار بهش توجه نمی کردن و ازش نقل نمی کردن خیر. پس هر دوتا مقدمه که بخواستیم اینجا ثابت شد اولا نقل ابن از یونوس ثانی ضعف داشتن و ضعیف بودن یونوس هر دوتا شو گفتیم پس قاعده نه شد لا یربونه ولا یرسلونه الا انسقه دیگه نگید جایی این زشته این همه از زحفا نه ها کردن از یونوس نه ها کردن حالا از نه هم یونوس یه دونه باشه گفتیم کافیه دیگه و قال الكازمي که این عبارت تایید ضعف یونس کازمی کتابی داره به اسم تکملت ال رجال که تکمله نقد رجال تفرشیه اسمش هم گویا عبدالنبی کازمی هست متوفای 1256 یعنی حدود 150 سال پیش از دنیا رفته این آقا اونجا اینجوری گفته گفته علماء و رجال بالغو فی زمهی در مورد یونس ابن زبیان مبالغه یعنی خیلی دیگه اولو رو زمش کردن و نسبوه و و زخ و تهمه و الغروف و وز حدیث دیگه چیزی نمود که این یونس ابن زب زبیان دیگه چی میخواست داشته باشه که ضعیف باشه و نقلو عن رزا, رزا علیه السلام و لعنهو. امام رضا لند بر او داشتن که نخش شده خیلی دیگه تیر خلاصم زده شد کازمی هم این رو تایید کرد و تمام آقای صبحانی نمیپذیره میگه نه حالا ببینیم بر کدوم مقدمش اشکال میکنه آیا یونو صبح زبیان الان در جواب میخوایم بگیم نه آقا ضعیف نیست پس این حرف نجاشی و این تکمله چی میشه؟ رد میکنیم یا میخواد بگه ضعیف هست ولی ابن ابی عمر ازش نقل نکرده ببینیم کدوم این هاست میگه که ول اجابتو به وجوه چند تا وجه؟ حالا شاید به هر دو مقدمه بپردازه ال اولو از ظاهر و انم محمد ابن عبی عمرن لا یروی ان غیر سقط ازنفرده هوا به نقل میگه که ابن عبی عمر روایت از غیر سقه نمی کند از غیر سقه روایت نمی کند همون چه شیختوسی گفت لا ولا منطقه شرط داره از غیر سقه روایت نمی کند. شرطش اینه که ازن فرده وقتی اون غیر سقه منفرد باشه اما اگر یه روایتی هم سقه داره سقه روایتی رو برای ما گفته غیر سقه هم گفته یعنی اون غیر سقه در عرض یک سقه روایتی رو برای ما نهل کرده باشه پس اون غیر سقه منفرد نیست با یه شخص دیگه داره نهل نکن در این صورت از اون غیر سقه به اپناده رو نهل چون اون قول غیر سقه با اون قول سقه در کنار هم هم دیگر رو چی کار هم پوشانه میکنه اون در واقع قول سقه این قول غیر سقه رو تقویت میکنه ساپورت میکنه حمایت میکنه لذا ابن عبیومر تو جور موارد میتونه از غیر سقه نهار کنه چه اشکان داره؟ شما الان ممکنین یه شخص غیر سقه ای یه روایتی به شما بینید که هیچ جا دیگه اینو نشده دید هیچ کسی اینو نگفته آره اینو نقل کنی ما، کنیم و نمیکنه. اما یه روایتی که افراد سقه به شما گفتن حالا میده یه غیر سقه هم کرد اون چیش دارم مثلا اون آجاقایی بود که هی من مندر آوردی خیلی نهر می کرد یه داره یه می گفت که هیچ که نشینه بود خب اونا رو ممنون ما اطمینان نمی کنیم اما اگر یه جریانی رو که دیگران هم نهر کردن آقای بشتی هم نهر کرده آقا هم نهر کرده اون از اما. خب او رو اون رو اونم میشون نفتیم چون مااط بینان داریمچین درسته چون بقی هم نان کردن. اینجا هم همینه. یکی ابنبیومه لایوی ان غیر سقطه ازن فراد هوا بنقل نقل ولی اجلهی لم گروه یونو سبن زبییان الله ها زللحدی س فقط. یون و سبن روایتهایی که داره چون منفرد هست ابن ازش به هیچ نقل نکرده اما اینو نقل کرده علتش چیه؟ چون اینجا این منفرد نبوده الا حاضر حدیثه فقط خب حالا سوال، اینجا منفرد نبوده واقعا؟ یا نه منفرد بوده؟ این باید بررسی بشه ما هو از ظاهر من موجع الرجال اندل بحث عن تفصیل طبقات الرواة که در اونجا آقای خویی گفتن که ابن ابی عمر فقط همین یه حدیث رو از یونس نقل کرده طبق همین توضیحات آقای صبحانی باید بگیم پس در اینجا یونس متفرد به این حدیث نبوده اما اذا لم يتفرد وقتی اون ضعیف متفرد نیست افراد دیگری هم در ارزه او هستند که اونا ثقه هستن و همین حدیث رو نقل کرده اند کما اذا نقلها ثقه تو و غیرو غیر ثقه هم نقل کرده فیرویان هما از هر دو تاشون نعم کننده تاییدن لیل خبر نقل خبر از ضعیف معید میشه دیگه چه داره و به عباراتن اخرى لا یروی عن الضعیف اذا کان فی طور صدقه از ضعیف نقل نمیکنن وقتی در طول سقه مثلا یه ضعیفی از یک سقه نقل کنه در اون صورت از اون ضعیف نقل نمی چون اون در طول سقه اما یک ضعیفی نقل داره یک سقه هم همون نقل رو جداگانه داره این در عرضه است این اشکال نداره لافی عرضه هی. یعنی وقتی در عرض اون سقه هست ازش نرمی کنم و عمل مقامو حالا اینجا چه اتفاقی افتاده آیا در اینجا در عرض سقه هست روایت یونوس یا در طول سقه میگه که و عمل مقامو فقط روا برید و یونوس معن آیا حبیبی در این بحث تو این روایت الان داریم ابن عبی عمر نقل کرده است نه فقط از یونوس بلکه واق داشت دیگه هم از بورید یا یزید نسخه است بورید و یزید یا بورید بوده یا یزید بوده خب ابن عبی عمر یه نقل از اونا داره و یه نقل هم از یونوس حالا بورید و یزید هر کدوم اینا رو باید ببینیم اگه سقه باشن میگیم ها از اونا نقل کرده از یونس هم معیداً نقل کرده تعییدن نقل کرده چوش گفت در ارزه هم باشن ابنت و یونس و انکان کان ضعيفاً لاكن نهو كما رواه انه رواه ابن بریدن ايضا آقای ابن بیوقل درست از یونس که ضعیف نقل کرده ولی از برید هم نقل کرده رواه و ان بوریدن ایزاً چمافی نسخه تحذیبه ول و ول این بورید در تحذیب و وافی و وسائل هست یا این که بگو یزیده چمافی نسخه تل البته میگه که این نسخه استفسار بهتره ول اولو بعیدون این چه بورید باشه یعنی ابن عبی عمر از بورید نرد شده این بعیده خورده علتش اینکه که لیان نروایت ابن عبی عمر ان ابن معاویه المتوفه فی حیات الامام صادق علیه السلام و قبل سال 148 بعیدتون برد در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفته خود امام صادق علیه السلام هم سال 148 هجری به شهادت رسیده پس معلوم میشه برد قبل از 148 از دنیا رفته حالا ابن ابی عمر چه وفاتش 217ه 217 یعنی از شخصی که بذار حساب کنم 217 اونم قبل از 148 چقدر فاصله میشه 52 سال اینجا 17 سالم اون روش بذار 52 59 69 سال خود آره مثلا ابن ابي عمر 70 سال قبل از مرگش از بورید نهر کرده باشه این بعیده چند سال داشتم اگه ایب نبیامیش جزوی محمدین ذکر نشده شاید بوقع مرشیش هفتات سال بیشتر نداشته پس از بورید بعیده فسانی هوال متعین این نسخه یزید بهتره حالا آقای صبحانی که محکمتر بگه بگه متعینه اصلا حالا این یزید باشه آقای صبحانی حرف تموم نشده ها مرتب تموم نشده باید بگید. اگر این یزیده باید بگید سقهس چون اگه سقه نباشه این حرفتون درست در نمیاد دیگه گفتید از ضعیف در کنار سقه نخر میکنه در عرض سقه نخر میکنه ایشون هم پردازی میکنه میگه یحتمل اگر این یزید باشه یحتمل ان یکن المراد من یزید ابا خالد القمات و هو سقه تون ابی عبدالله علیه السلام و یروی انها صفوان کم آفیر جاله نجاشی پس اگر یزید باشه احتمال اینکه که ابو خالد قمات باشه خوبه زیاده چون اونم سقه است از امام صادق نقل داره و صفوان هم از اون نقل میکنه چه نجاشی گزارش کرده فیاسه ها نقل و ابن عبی اومیر پس ابن عبی میتونه از یزید نقل کنه ابو خالد قمات چون سقه است چما یحتمل احتمال دیگه هم هست ان یکون المراد منه یزید ابن خلیفه لذی هو من اصحاب صادق علی السلام و یرم ان هو صفوانو ایزن چما فل استفسار شاید هم یزید ابن خلیفه باشه از اصحاب امام که صفوان هم از اون عقل داره این از نکته اول پس ما اومدیم گفتیم جنب نکته اول این شد چه ابن عبیومیر از سقه نقل میکنه از غیر سقه نقل نمیکنه البته ممکنه یه موردی پیش بیاد که ابن عبیومیر از غیر سقه در عرض سقه نقل کنه حالا اینجا هم همینه اگر یونوس ضعیف هست ابن عبیومیر از او و از سقه نقل کرده چه همین یزید هست ابو خالد قمات یا یزید ابن خلیفه البته آی سохفان اینجا یزید ابن خلیفه رو دیگه نکرد. جا داشت که بگی که یزید ابن خلیفه صغه است چون اگه سقه نباشه این جوابشون اینجا خیلی تکمیل نمیشه. ولی اگه بگیم نه اگرم ضعیف باشه به هر حال متفرد نیستن دیگه. دو نفر در ارزه هم نحو کردن تنهایی نه کردن. دو نفر نل کردن. به حال اینجا بس یه جهتش ناقص مون. های آی صبحانی اگر اینجا رها چرد دیگه بس رو من گویم چه آی صبحانی بگه نه همین که صفان ازش نقل میکنه یعنی سقه دیگه همین که صفان هم ازش نقل میکنه و ما هم گفتیم هم ابن عبی میل و هم صفان ازش نقل میکنن یعنی سقه هست به هر حال میگم بس ناقص موند این جاشاها باید اون تکملش ملش رو باید میگفت دیگه خب از دومین دو مطلب دومین دو پاسخ به این اشکال که یونس هبن زبیان ضعیف هست ابن نبیامر ازش نباید نرم کرده نرم کرده پس لا یربونه ولا یرسلون انسقه الانسقه درست نیست از احتمال و وجود الارسال فر روایه آیه صبحانی اینجا میاد و با پذیرش این یونس ضعیفه. میبوی باشه. یونس ضعیفه؟ ولی ابن عبی از یونس نقل نکرده. چطور از یونس نقل کرد؟ پس ببین جواب اولی شد. ابن... اه... یونس ضعیف است باشه. ولی ابن عبی از ضعیفه ها وقتی متفرد نباشن نهل میکنه. اشکار نداره. جواب دوم. دوباره یونس ضعیفه هست.lls نداره. ولی ابن عبی امر از او بیواصد نقل نکرده. اینو میخوایم میخواییم بگیم. بی نقل نعل نکرد چطور نعل نکرد سند چه بیواسطه واسطه است ببینید سند رو دوباره میخونم ابن ابی رمش ان یا یزید و یونس یعنی ابن ابی رمل رفته پیش بولید یا یزید چه گفت یزید متعین ابن ابی رمل رفته پیش یزید و یونس ابن زبیان دیگه پس بیواسطه از اون دو نفر نعل کرده دیگه چطور میگید نعل نکرد بی ها ما اگر دقت کنیم در سند طبقه شناسی و راوی شناسی اونها رو کار کرده باشیم متوجه میشیم که تو این سند یه مشکلی هست یه افتادگی هست سند به همین راحتی نیست ببینیم از سانی احتمال و وجود الارسال فر روایه ارسال یعنی که یه بخشی از روایت رو ولش کرده راوی سند رو نگفته یه بخشی از سند رو پم من وجود الواس ته پایینه اب عمر و یونوس بین اب نبی عمر و یونوس فاصله هست. شما میتونید بگید الان چطور فاصله هست، واسطه هست؟ اما چطور میشه اینو بررسی کرد؟ چه بین یونوس و اب نبی عمر واسطه هست؟ در هاچ اب عمر ان یونوس الان داریم اینجا، بی واسطه تر تو سناد. چطور میشه اینو تشخیص داد؟ ما بریم مثلا رجال نجاشی رو نگاه کنیم به اگر بگی که یونس هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و در زمان امام صادق از دنیا رفت تو باره مثلا همون میشه دیگه درسته؟ میگیم آقا ابن عبی عمر دیمیست و هیفده از دنیا رفته یو... مثلا یونس هم قبل از امام صادق از دنیا رفته هفتاد سال فاصله از مرگ تا مرگ ابن عبیومیر خب این خیلی بعیده میخوام حالا نمیگم این رو میگه های صبحانی حالا باید ببینیم میخوام بگم این مدلی میشه بردسی کرد نگاه کنیم به یه چیل یه راحتی کشم که ما اسناد کتب رو نگاه کنیم احادیث رو سندهاش رو ببینیم بعد ببینیم ابن عبیومیر از یونس کلا چند تا روایت داره بعد ببینیم ابن عبیومیر با واسطه چند تا روایت داره از یونس ممکنه با واسطه پیدا کنیم ببینیم ا مثلا چندین مورد واسطه هست این یه دونه بی واسطه است خب معلوم میشه که این یه دونه ارسال داره اشتباه شده اون بقیه بهتره بقیه درسته حالا ببینیم این سوفانی چه جوری میره جلو میگی که احتمال وجود ارسال در روایت به معنا وجود واسطت بین ابن ابي و یونس و قد سقطت اند نقل موقع نقل راویان این رو انداختن یا نسخه نویس های این رو انداختنش و ذالکه حالا حساس بشید ببینید به چه دلیل من دو تا راه پیشنهاد کردم ببینیم این چه این رو میره لعن یونوسا قد توفیه فی حیات لباب صادقه علیه السلام دیدی همون رای که تو برایت گفت سال 148 هجری یونوس درگذشته است. قبل از 148 ش که گفتم من بعد گفتم قبل از 148 چون 148 سال وفات حضرت صادق علیه السلام خودش هست ایشون هم در حیات امام صادق در گذشته. یعنی حداقل قبل از 148 که 147 شیشی چیزی میشه. کما از هرومن دعا الاتی از اون مدتی که بردن خواهد اومد دعای آتی البته مردان صحفش نمیدونم کجاست اونو بردن میرسیم حالا صحفش رو نمیدونم اینو برسیم تا ارز کنم وقت توفیل امام علیه السلام در سال 148 و من البعید این همون برید بعید است که ابن عبی عمیل. از شخصی که در سال قبل از سال 148 در گذشته است روایت کرده باشه الا یکون معمرا مگر که ابن ابي عمر مثلا در سال 148 یه 20 سالی 30 سالی داشته که اون وقت واقع وفاتش هم سال 217 میشد 100 ساله دیگه معمر میشد در حال چه رو به عنوان معمر معلوم نیست باشه نگفتن الا یکون معمرا قابلن افضل حدیث ان تلامیز الامام الذين شاگردان امام که در حیات امام از دنیا رفتن از اونا میتونست نقل کنه این به شرط این که باشه و هوا غیر ثابته معمل بودنش ثابت نیست و لذا بعیده معلوم نیست که از یونس بتونه نقل کنه همون حرفی که در بوریت زد کاسی جای اشاره میکرد میگو همونتون که تو بوریت گفتیم دیگه همین دو سه و بالاتر. بالتر همینو استدلال کرد و گفت دیگه پس دومین اشکال تمام جنبندیش این شد اصلا ابن عبیومیر نقلش از یونوس به صورت بیواسته معلوم نیست احتمالا این صندت مشکل داره با واسطه شد اون وقتی ما همون بس که قبلن گذشت که لا یرمونه ولا یرسلونه الا انسقه منظورون بیواسته ها رو داره میگه حالا با واسطه هاش این غیر سقه باشه اونو ما خیلی دعوی نداریم روش اگر یونس راوی ابن ابی عمرش یعنی ابن ابی اگر از یونس با واسطه نقل کرده باشه مشکلی نیست یونس ضعیفه ابن ابی عمرم از اون نقل چنده چاست شاگردانم نقل کرده اینم جواب دوم جواب سوم مقدمه اون یه چی مقدمه مقدمه دوم رو زیر سوال می گیرستان یونس چی گفته ضعیفه پس برفرض که اصلا ابن عمر از اون نقل کرده بیوازته هم کرده و یونس یونوس ضعیف باشه این چیزی که نجاشی گفته بود ضعیف جدن لا یلتفتو الا ما رواهو کل کتبهی تخلیتون بعد کازمیم اومد اونجوری گفت که علما و رجال همشون این رو تذیه کردن و اینا اوی سبحان چه جوری جواب میده باید ببینیم اینا از سالس انه لامیا سبوت زعف ثابت نیست علتش چیه اوی سبحان میگه لا ما رواه الکشی و انه هشام ابن سالم چش روایتی داره از هشام ابن سالم نقل کرده اشام ابن سالمی که سهل تو عبا عبدالله علیه السلام انیون یونس بن زبیانه فقاله امام صدقه السلام فرمود که رحمه الله خدا را رحم کرد و بنا لهو بیتن فی الجنه برای او در جنهت بیتی را بنا کرد کانوالله معمونن فی الحدیث امام صادق السلام می که آقای یونوس ابن زبیان معمونه در حدیث بود یعنی قابل اعتماد بود امین بود این رو چشتی نهد کرده خب میگیم آقای صحبانی همین خیلی خوبه چه این چه خیلی خوبه کانه معمونت در حدیث چرا میگی لال ما رواه و چشتی چرا به خاطر این حدیث نه میگه آقای این حدیث مشکل داره خدا همین حدیث چشتی مشکل داره و زاله که لعن نفی سندهی زعفن این, حد این سند, سند که چشیره باید رو گفته در سندش ضعف وجود داره و وجود ابنه هربیه مجهول در سند این حدیث ابن هربی وجود داره و او مجهوله وقت قد نسته به چشی. خود چشیره گفته حالا ما نمیگیم مجهول برای ماست نه خود چشیره میگه آه این شخص برای من مجهوله نصر به چشی من عبارت چشی رو میخونم براتون شیخ توسی تو اون اختیار معرفت رجال که کرده برای ما اون عبارت رو بعد از اون حدیث رو برده. گفته که قال ابو امرل چشی چشی گفته است ابن الحرویه و پس خود چشی این شخص رو نمیشناخته و, حد... و هازا حدیثون غیر و صحیحه معما قدرويفي يونس ابن ها... زبيان با اون روایات که در مورد یونس ابن زبیان داریم چه مشکل دارن این حدیثو نمیشه بپذاریم این حدیث ضعیفه ابن حلوی هم که مقبوله خیلی خب پس آقا سوپانی راست میگه با این حدیث ما نمیایم تایید کنیم آقای یونس ابن زبیان رو بل ل ویت بزنتی زال کرد خبررففی جامعی صحیح. میگه همون حدیث رو بزنتی نقل کرده است در جامعش جامعه بزنتی. اونجا دیگه سندش هری می نداره دیگه اون سندش درسته. میگیم صبح کنیم کدوم کتاب اینو نقل کرده از بزنتی میگه وقدر نقل هاب ادریس فی فیلم مستدرفاتهی آقای ابن ادریس در مستدرفات سرایر روایات چینشدهی رو آورده یکیش همینه اونجا دیگه از جامعه بزندی آورده وقتی حلاوی توش نیست دیگه اون زعفران رو نداره و در نجا روایت رو و مافی في مجمل رجال الحديث من ان طريق ابن ادریسه الى جامل بزنتي مجهولون فروايته به 44 طریقی ها ضعیفتون غیر تام این و مافی في رجال پاسخ به اشکال مقدره آقای سبحانی بگه آی خویی اومده تو مجمل رجال اشکال کرده گفته این درسته سندش با اون سند کشی فرمی میکنه حروی اینجا نیست درسته جامعه بزنطیه ولی اصلا طریق ابن ادریس تا جامعه بزنطی درست نیست ببین طریق ابن ادریس به جامعه بزنطی مجهولون پس تو برای اینم سندی داره اون اونجا داشت تو ابن حروی داشت این, این ورد رفت داره از ابن ادریس تا بزنطی مشکله خب دوباره خراب شد دیگه چه فرم کنه زرفش اومر باشه یا این نر بالاخره بلاخره سند خرابه دیگه فر روایتو به چلا طریقه ها زیفتو آی سبحانه میگه نه این هش غیر تامه این سخن تمام نیست لن نجامه اهو کسا این الجوامه کانم کتابل مشهوره ببینید فقط بحث سند نیست که شما نگاه کن ببین جامع بله، جامعه بزنتی مثل سایر جوامع از کتب مشهوره بوده است که انتصابش به معلفینش امری قطعی بوده و از کتب مجهوله نبوده است شما ببین ابن ادریس اومده از جامع بزنتی یک کتاب مشهور نقل کرده چتاب مشهور هم ضعف طریق بهش ای, ای بی و ایرادی نداره. چرا؟ اینو دیگه سبحانه توضیح علتش اینه. اگر یه چتابی مشهور باشه حتی طریق به اون چتاب زعیف باشه. طریق به اون چتاب میگم میگیم. زعیف هم باشه. ایرادی نداره. علتش اینه. چون این کتاب مشهور رو کسی نمیتونست توش دست ببره. اگر توش دست میبردند فوری رسوامی شده. ناقلش چرا؟ چون کتاب مشهور است. همین دستشون دارن مثل قرآن قرآن دست همه هست دیگه یه جایی بیاد یه قرآنی چاپ کنه که توش یه دونه واف هم حتی اضافه شده یا چم شده باشد آبه روش میده. همین میفهمن کتاب مشهور ضعفش مهم نیست این از این جهاز پس لان جامع بزنتی چه سایر جوامع کان من الكتب المشهورة التي کان انتسابها الی مؤلفيها امرا قطعیا ولم یکون من الكتب المجهوله کیفه چطور شما دلیل اشکال میکنید و قد کان مرجع الشیعت قبل تالیف الجوامع ثانویۃ کافی و غیری جامع بزنتی اصلا یکی از مراجع شیعه بوده یعنی شیعان به این کتاب مراجعه میکردن قبل از کافی وقتی مراجع شیعه بوده پس معلومه خیلی مشهور بوده مثل خود کافی الان هر روایتی الان مطرح می‌کنید تهش به کافی میاد دیگه رضا مشهوره و هیچ مشکلی پیش نمیاد اونجا هم همینطور کتاب جامعه و مشهور بوده و با این توجیه که من درس کردم حالا نگاه سبحانی نظرش همین بودی چه من گفتم یا نه کتاب بزنطی مشهور بوده و شهرت باعث میشه که زرف طریق ایرادی ایجاد نکنه باید صبحانی نمیگه چرا پس رو چه حسابی مشهور بودن این چتاب زرف طریقش مشکل ایجاد نمیکنه. اینو نمیگه من عرض کردم شاید مزورای صبحانی هم همین بوده خب ولی از لحاظ الوجوه سلاسته لا تسلحا روایتو لنغز قایدن ووجو سالصریه با دیگه جزمندی کنم آقای یونس بنو زبیان ضعیف است و ابن ابي از اون نقل کرده است پس قاعده شیخ طوسی درست نیست که لا غیرونه ولا دونه لا اثره اول سخانی سه تا جواب داد دو تا جواب اولش به این میخورد که ابن ابي اولیش این بود اگر هم از یونس نعل کرده باشه در چنار یک نقل از در ارذ نقل است پس ایرادی نداره، حالا همینجا اینو نکته رو ارز کنم، شما پس آه صبحانی این مطلب رو برید تو همون اول بحثی که خوندیم، شیخ توی قایده رو گفت لا یربون اولا یورسلون ایلا اصلا، اینو اونجا حسافه کنید، بگید ابن عبیومه، صفان، بزرتی، اینا لا یربون اولا یورسلون ایلا مگر اینکه در عرض راوی سقه باشه، از ضعیف نه. نمی نمیکنن مگر که در ارز راوی سقه باشه اینو پس اونجا بگید برنا این نکته اول نکته دوم این بود که ما اصلا نقل ابن عبیومیر از یونس رو با واسطه می دونیم چون یونس خیلی وقت پیش فوت کرده بود نکته سوم هم که یونس ابن در موردش دو تا روایت وارد شده که اشاره به وساقت او داره یکیش در چشی که ضعیفه و همون روایت در جامعه بزنتی که توسط ابن ادریس نمی شده و اون صحیحه طریق ابن ادریس تا اون جامعه بزنتی هم که مجبوره اگر این رو هم کنید میگیم نه جامعه بزنتی از کتابای مشهوره بوده رضا مشکلی پیش نمیاد. در نتیجه با این سه تا جوابی که دادیم ضعف یونت اقنو زبیان باعث خراب شدن ق این تمام دیگه علی ابن حدید باش انشالله برای جلسی بعد سلوات بفرستیم اللهم صلوات بحمد و بحمد خسته نمش